شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان این داستان جادوگر و گوزن سفید. قرباندا مرد جولیده با موهای سفید و خاکستری و بینی استخوانی بود. او در اطراف روستای بروکام که نزدیکی یک جنگل سرسبز و بزرگ بود در یک کلبه کوچک بین انبوهی از درختان بلند کاج زندگی میکرد و به حالی روستا داروهای گیاهی میفروخت. مردم از گرباندا و می میگفتند که او یک جادوگره. اونها سعی میکردند از گرباندا دوری کنند، مگر اینکه کسی به سختی مریض میشد و اونها نیاز به دارو داشتند. اما داروهای گیاهی گرباندا از داروهای گیاهی معمولی خیلی بهتر بود. به همین علت اعتقاد داشتن که او از نیروهای جادویی برای ساختن دارو استفاده میکنه. کنه داستان های عجیب زیادی در مورد اون می مثلا یکی از شایعه این بود که یه روز یکی از اهالی روستا با گرباندا بد حرف زد و به همین خاطر گرباندا گوسفندهای اون مرد رو جادو کرد چند روز بعد همه گوسفندها ها مریض شدن و یکی یکی مردن. یکی از اهالی سرشناس روستا یک شب رو توی خواب دیده بود که چند زنبور بزرگ به سمت اون انداخته. روز بعد دخترش به سختی مریض شد و نزدیک بود بمیره. همینطور شایعه شده بود که گورباندا با یک قول پرندهٔ ونفش از اقیانوس رد شده و به مهمونی دوستای جادوگرش در اون طرف اقیانوس رفت و بعد از یک هفته برگشته در اوایل پاییز همون سال بین مردم شایعه شده بود که یک گوزن سفید شبها توی جنگل نزدیک بروکهان پرسه میزنه شاید درست بود چون که کم کم تعداد بیشتری از اهالی گوزن رو دیدن. گوزن نیمه شبها وقتی که احالی روستا خواب بودند و به روستا میومد و وارد زمین ها و محصولات روستایی ها می شد و اونها رو خراب میکرد. با پیدا شدن گوزن سفید مشکلات زیادی هم در روستا به وجود اومده بود. از وقتی که در جنگل اطراف روستا دیده شده بود دام های روستا مریض می شدند و می مردن. شیر گاف هم که کم شده بود و دیگه جوجه ای هم به دنیا نمیومد. آب رودخونه روستا هم کدر و بدبور شده بود و گل های اطراف زمین های روستا هم پج مرده شده بودند. مردم روستا نگران بودن و دلیل همه اینها رو اومدن گوزن سفید می دونستن. اما کاری از دستشون بر نمی اومد. بعد از چند وقت مردم به فکر چاره ای افتادن. چون که نمی همه دام و محصولاتشون رو از دست بدن. به همین خاطر تفنگاشون رو برداشتند و شبها به جنگل می تا گوزن سفید رو شکار کنن. چندین شب این کار رو انجام دادن اما هیچ کس نتونست اون رو شکار کنه. گوز سفید بسیار بزرگ بود و قوی و خیلی سریع هم حرکت میکن. شکارچی ها می که اون گوز مثل شبه سریه. اونها میگفتن حتی گلوله هاشونن به اون گوز اثر نمیکنه و ازش رد میشه. مردم روستا دیگه داشتن از این وضع ناامید می ولی راه حل دیگهی به فکرشون نمیرسید. رسید. یک شب یکی از روستایی ها به اسم سیلبا که برای خودش رو گم کرده بود برای پیدا کردنش به جنگل رفت. سیلبا همینطور که داشت دنبال بره می گشت ناگهان گبزن سفید رو در اطراف کلبه گربان دادی. گاوس در حال دویدن و خوردن سبزی‌ها و برگ‌های درخت‌ها بود و بعد از مدتی از کلبه دور شد. بعد به سمت روستا دوید و لابلای درختان ناپدید شد. چند تا از اهالی روستای دیگر هم چندین بار گوزن رو نزدیک کلبه جادوگر دیده بودند. سیلبا که خودش رو پشت درختها پنهان کرده بود بعد از چند دقیقه به سرعت و بیسر صدا به سمت خونش برگشت. سیلبا هم مثل بقیه روستاییها ها چند تا از گوسفندهاش تلف شده بودند و محصولاتش از بین رفته بودند. اون خیلی ناراحت بود و میخواست هر طور شده گوزن سفید رو شکار کنه. سیلبا با خودش به این نتیجه رسید که این نمیتونه یک گوزن معمولی باشه. اصلا گوزن چرا باید سفید باشه؟ اون حتما یک گوزن جادوییه به همین دلیل که ازش رد میشند. سیلبا با مدتها قبل توی کتابی که پدر بهش داده بود و خونده بود که اگر کسی بخواد یک حیوان جادویی رو شکار کنه باید گلوله از جنس نقره درست کنه و با اون گلوله ها میتونه هر حیوان جادویی رو شکار کنه. بنابراین تمام طول روز رو مشغول ساختن گلوله های شد. همون شب بعد از اینکه توفنگ قدیمی پدرش رو برداشت و اون رو با گلوله‌های نقرهای پر کرد به سمت جنگل و نزدیک کلبه گرباندا حرکت کرد و همونجا منتظر گوز شد. چند ساعتی منتظر شد و دیگه کم کم داشت از اومدن گوز ناامید میشد. که ناگهان گوزن سفید رو دید که از پشت کلبه پیدا شد. سیلبای شجا تفنگش رو آماده شلیک کرد و در یک زمان خوب که گوزد خیلی نزدیک شده بود اون رو هدف گرفت و بهش شلیک کرد. اما گلوله بهش نخورد. گوزد که فکر میکرد گلوله ها ازش رد میشن با خیال راحت به دویدن ادامه داد. سیلوا به سرعت هدفگیری کرد و یک گلوله دیگه به اون شلی کرد. این بار گلوله به گوزد خورد و گوزن سفید که داشت میدوید ناگهان ایستاد و بلرزه افتاد. اما بعد از چند ثانیه اطرافش رو نگاه کرد و دوباره شروع به دویدن کرد. انگار که گلوله بهش اثر کرده بود ولی او هنوز زنده بود و تونست فرار کنه. سیلبا دوباره نشونه گرفت و همینطور که گوزن سفید داشت فرار میکرد چند تیر دیگه به سمت اون شلیک کرد چند روز از این اتفاق گذشت و گوزن سفید در اطراف روستا دیده نشد دام ها داشت بهتر میشد و محصولات دوباره داشتن به خوبی رشد میکردند و مردم روستا خوشحال بودند و داشتن دوباره به زندگی امیدوار میشدند چند روزی از این ماجرا گذشت. در همین زمان بود که اهالی روستا خبر آوردند گورباندا به شدت مریض شده و چند روز بعد فهمیدن که اون مرده. وقتی سیلبا به همراه چند نفر از اهالی به کلبه اون رفت گوربانده رو دید که روی یک تخت چوبی دراز کشید و اطراف تخت پر از پارچه‌های خونی سیلبا با دقت بیشتری داخل کلبه رو گشت بعد از کمی تجسسم زیر تخت گورباندان سه گلوله خونی از جنس نقره پیدا کرد چند سالی گذشت و مردم روستا با آرامش زندگی کردند اونها دیگه مشکلی با محصولات و دامهاشون نداشتند و همه این آرامش رو مدیون سیلبا بودن بعد از اون دیگه هیچ وقت گوزن سفید در جنگل دیده نشد آیا گربانده همون گوزن سفید بوده؟ سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب